صدا حال هوای قطار من را یاد داستانی یاد داستانی یاد داستانی یاد داستانی <تصفح> یا با بی اموی سانروف باز کامران پسر حاجاغا فلانی که با آهنگ هایلایت ببینش با باقا بایشم بودم سوژه نداریم واسه اول کجا درونش برانی یا با بی ام سانروف باز کامران پسر هاج فلانی که با آهنگ های لایت ازد نکنه درونش برانی یا با بی ام وی سنروف باز کامران پسر خاجاغفالانی که با آهنگ ببینی تو مغزم رفت و can make an explosion and all those things I کسی که روی جاده ابدیت به سوی لحظه توحید می رود و ساعت همیشه گشت را با منطق ریاضی تفریق و تفریقه ها کوک می کند این کیست؟ این کسی که بانگ خروسان را آغاز قلب روز نمی داند. آغاز بوی ناشتایی می داند این کیست؟ این کسی که تاج عشق به سر دارد و در میان جامعه های عروسی پوسیده است؟ تا هجده هجره بنافشه یعنی اپیزود پنجم از فصل یکم صدایی از احماق وجود آدمای خسته از این زندگی ماشینی پر سر و صدا که میخواهد برخیزد تا حرفایی بزنگر که دیگران نزدن من آرش یه جملهی دارم که میگه من دارم میرم یا با من بیا یا از سر راهم برو کنار و این اپیزودو تقدیم میکنن به منوپاد که ثبت خاطره میکنن و تقدیم میکنن به جاده تو مه غرافته دستهای یخ زدم رو چسبونده بودم به فرمون و چشمای خوابالودم رو به خطهای سفید وسط جاده که پشت سر هم از جلوی نور چراغ ماشین رد می‌شدن دور اطرافم مه بود و سیاهی بیابون یه دستم رو از روی فرمون بلند کردم و پاکت سیگار رو از جیب کتم درآوردم سیگار رو آتیش کردم دود گند سیگار هوای ریاهان رو گرم کرد خطای سفید همینطوری پشت سر هم رد می یهو یه, و یه و انگار یه چیزی مثل شبه پرید وسط خطای سفید پاهم رو با قدرت روی توانس بشه ده. با یکی از دوستانم توی قطار کرمان تهران درس دومین بار است که سوار قطار می شود. اولین بار 7 سال پیش بود که سوار قطار شدم. صدای چرخهای قطار که با یک ضربه منظم از روی ریل‌ها رد می شود. من را یاد فیلم ها می می‌اندازد. تمام فیلم‌هایی که در آنها کشمکشی بر سر پول یا زن وجود داشته است. ظاهرا کشیدن سیگار اینجا ممنوع است، ولی من و دوستم کار خودمان را کرده سیگار آخر شب را کشیده ایم و برگشتیم توی خودمان و روی تخت بالایی دراز کوپی های ما یک جوان دیلاق همشهری خودمان است، و یک خانواده که یک زن و مرد و دو تا بچه اند. مرد هیکل درشت و ورزیدهای دارد. بازوهای کلفت و تراشیده شدهش تمام آستین پیراهنش را پر کرده است. موهایش کمی فر دارند و آن مرد عمیقاً توی فکر است. لهجتش به این جایه ها نمیخورد. نمی‌خورد. شلوار جین آبی رنگ پوشیده و دور کفشهایش پاره است. زنش با اینکه خیلی به خودش رسیده ولی به نظر خیلی جوانتر نمیهاید. شاید هم شوهرش باشد. موهای رنگ شده بوری دارد. صورت صاف و مرتبی دارد، و تا الان مدام با موبایلش دارد صحبت می‌کند. انگار یک بمگوی خانوادگی دارند. دختر بزرگش به نظر 7-8 ساله می آید. توی تخت وسطی نشسته و دارد برای خودش عروسک بازی می‌کند. سازش کوک نیست. به عنوان یک دختر با این سن و سال زیادی ساکت است. لباسهایش نو نیستند و مدام با ناخن‌هاش بازی می‌کند. دختر کوچکشان شیرخوار است و تازه دارد به حرف میآید. هم موقعی که سوار شدن دارد ونگ, ونگ می کند. مادرش شیر خوش درست کرد و به او داد اما هنوز صدایش قطع نشده است. بکنم موقع خوابش باشد که اینقدر بیتابی می کند. شاید باید سینه مادرش توی دهانش باشد که بخوابد. ولی مادرش به واسط های مرد نامحرمی که توی کوپه هست هستند نمیتواند پسنش را توی دهان بچه بگذارد و او را بخواباند. و بنابراین ما مجبوریم صدای نررمق بچه را تحمل کنیم. آن پسر که هم با آن صورت و سبز و موهای مدل آنناسی، همون اول جایش رو انداخت و خوابید توی راهروی قطار پرده خیلی از کوپاره کشیدند و بعضی از اتاق هم بدون اینکه پرده را بکشند جایشان را پهن کردند و خوابیدند عموماً به حالت جنینی توی خودشان مُچاله شدند زن‌ها با مقنعه و روسری و جوراب و شلوار و مردا هم با رکابی و وزنه و شلواره همه با هم قریبند همه مواظب وسایلمان هستیم انگار که می‌خواهیم سر گردنه بخوابیم کسی توی قصر هوای کسی را ندارد کسی برای ها به کسی کمک نمی‌کند همه سعی کردن اول به صندلی برسند بس این قرار است سندلی هایشان را دوزهای سرگردنه بدوزدن مرد موفرفری توی کوپه آرامش ندارد چون سه نفر غریبه توی اتاقی هستند که زنش قرار است توی همان اتاق بخوابد. تا اینها را نوشتم یک ساعتی طول کشید و صدای ونگونگ آن دختر شیرخوار دارد کم می شود حتما مادرش سینهاش را چپاده توی حلقهش و دارد او را می خواب. صدا حال هوای قطار من را یاد داستانی می اندازد که در آن مردی لباسش را به چوب دستیش بست و آتش داد و باعث شد یک قطار نجات پیدا کند و افسانه شد هرچند که آن مرد قهرمان بوده است اما در این داستان افثانهی حرفی از راننده آن قطار به میان نیامد چرا که شاید اگر من جای آن راننده قطار بودم به نور آتشی که روی ریل قطار می توجهی نمیکردم همانطور که الان به خیلی از نورهای زندگی هم توجه نمی‌کنم. شاید خیلی بعید باشد که یک نور کمسو روی رئیرهای قطار در یک کوهستان سر بتواند به من بقبولاند که باید ایستاد سخت است که با یک نور توقف کرد کم کم قرص خوابم دارد پلکایم را سنگین می کند باید بخوابم صدای دختر مرد موفرفری هم قد شده است او هم خوابیده است مرا دیگر انگیزه سفر نیست مرا دیگر هوای سفری به سر نیست. قطاری که نیمه شبان نارشان از ده ما میگذرد، آسمان مرا کوچک نمی کند. و ای که از گرده پل می گذرد آرزوی مرا با خود به افق های دیگر نمیبرد. آدمها و بویناکی دنیاهاشان یکسر، سر دوزخی است در کتابی که منان را لغت به لغت، از بر تا راز بلند انزوا را دریابم راز عمیق چاه را از ابتضال عتش نشسته بودم روی صندلی عقب هوایی توی ماشین گرم بود و پر بود از سپیدی دود سیگار که دور سر سرون یا رو گرفته بود هنوز لرز سرمایه بیرون توی تنم بود وقتی نور چراغ ماشینش رو توی سیاهی و برهوت جاده دیدم بی پریدم جلوش ترمز زد و سوار شدم عقب ماشین از میونه دودادم توی ماشین برق چشمشو توی آینه میدیدم برق چشمایی که بعد جوری از زیر ابراه پرپشتش بهم خیره شده بود دستم رو کردم توی جیب پالتون چیزی چاق رو با نوک انگشتم لمس کردم هوام دیگه داشت روشن می شد. بی معطلی چاقو رو درآوردم و کشیدم گوشه گردنش لبه پرتگاه کنار جادهای که نور کمرنگ صبح خط ممتد سپید اون رو روشن کرده صدای چرخهای اتومبیلی که با سرعت نزدیک میشه سکوت رخوتناک جاده رو میشکنه یک مرد راننده اتومبیله فرمون از دستهای مرد راننده رها شده زنی از عقب در حالی که تیزی چاقوی را برگردن مرد فشار میده او را تهدید میکنه. اتومبیل به پردگاه نزدیک میشه. مرد راننده وحشت زده فریاد میکشه. اتومبیل از ات جاده منحرف میشه و به پردگاه سقوط میکنه. صدای برخورد شدید اتومبیل با سنگ ها با فریادهای خفه ای در هم می آمیزه و بعد یک انفجار. جاده سرد و خلوت با یک خط سفید ممتد وسطو نور کرننگ صبح برون میتابه میتاوه. جو سکوت صدایی نیست. A long, a long highway, listen to the engine think about the woman Or the girl you knew the night before But your thoughts will soon be wandering The way they always do When you're riding 16 hours And there's nothing much to do And you don't feel much like riding You just wish the trip was through اپیزود پنجم از فصل یکم رادیو هجره بنفش رو با هم شدیم. توی این قسمت همراه بودیم با متنی از ابود فضل بمانید که نویسندگی خودش رو تو پیج فیس بک میگیرن یا داشته خصوصی یک درگاهی منتشر میکنه. همراه بودیم با نویسندگی از پاتانا آبدینی از این به بعد سعی میکنیم مرتانی که تو رادیو خونده میشه رو در وبسایت رادیو هجره بنفش با آدرس هجره بنفش تاها منتشر کنیم. و البته موزیک هایم که پخش میشه رو همونجا معرفی میکنیم تا اگه خوشش تو نماد دانلود کنید ببرید. تا دو هفته دیگه یه حجره بنفش جدید و شاد باشید و عرقوانی و تموم Ringing in your head You smoked the day's last cigarette Remembering what she said What she said I do it for the money And... And I can change my life, and I can I can be what society wants me to be, and I can raise my daughter just as good as anybody else can.